اللهم صل على رسول الله وعلى اله جميع که ما تحقیصوندن شدیم و کلمات تحقیصوندن در این مسئله خیلی زیاده ما مختصری رو به مقداری که آشنا روشیم با حضرت تفکر و از امینه ها کردیم و اگه ها مطالبی کنون رو نقلی کردن مطالب فرافاند و وقتها در کتوبه اصولی اونها طبعا هر مسئله این با نقاط جدید رو بحث کردن که ترمه همانه دو حتی اشاره هم نکن پس تا مثاله را ماهرکتر با هم تعداد توزد که ما اشاره هم چون خوبی بحث طولانی رو کردن که ایشهای بحثشان ضعیفه خیلی بیگه نیاز نبود کن بشه. بشین که در اصولی این مطبعه شد نظر نرز بودن با عنوان بحثای بحث بحث بوده در قده از کتب خود از خواب ما هم آمده اینطور نبوده که مثلا در یه مرمونی سهر مرتضا رو تو نیابردم چون در خبورم نسبتا که فکر تو داری. خیلی از خبوری رو که اهل سنت توی شما آوردن ایشون هم کرده و خب ایشون آخرش هر فرد رو که میاده نتیجی گیریش یک فرمه که مثلا اگر که این کاشف از با امام ما محصوم باشه پیش ما حجد به ایلافرا داری نبیتونی این آقا مسائل مطرح رو کنه تمام مطالبیه داری داری از که در میگرده بود دادیه به ترکیلی مسائل میدونی این کتاب کشترگناه مرمومه آشه که سالانه دیده بودن و باورن بسیار کتاب خوب بود تا دیگه اصلا کلمات اصولی شیعه سنی بیشتر احل سنت دیده و از هر این مقدار اون مطالب ها به نحوه اجمال ما نورده که اصولا این نحوه بس در ما مفید نیست مفید فارده واقع نمیشه ما بعد از هر اجمالی به کلمات احل سنت و این که اهل سنت سه مبنا برای حجید اجمال در نظر بیرسن یکی آیات یک کتاب بخور قضایی سر رکی یکی روایات بکنم یک بکنم عرض این رو ما متعرض شدیم اجمالا و دستورت پروشورده از کتاب مستقضایی کنیدیم که کتاب زیاد دارد کتاب عصودی زیاد دارد که بزیاد شده بسید به این از نتیجه و حاصلی نداره انصافش و متعرض بحث خودمون شده پس کردیم پرست هم اعتباطش اینه که دلیل صدیب روایات نه های روشن روشنگوی و نه حکم عقل چون که حضرین هست که روایات و از روایات هم بزرگان رو اشکال معروفی داره که اخبار آهاده شکرش هم سه قابل اعتماد نیست جواب معروفی که دادن تواصل معنوی و تواصل اجمالی گفتن درست به این اشکال وارده لیکن ما به مجموعه ای این روایات تواثر محنوی و مثل تحبیر تواثر اجماعی و محنوی در کلمات ما آمده در کلمات بزرگان عقل سنت هم هی میخواد بگم یکیو تواثر این تحبیر رو نمی کنن و فرق تواثر اجماعی و محنوی رو از کریم از در کلمات مثل تحرازی آمده یشون منتفه که اینو دوتا فرم می کنن و نتیجی گیری شرم می کنه برای این که ما ما براحتی برمی میکن برای نکرد حالا از درشون تواثر معنوی گفتم برای از درشون میخواد خواهد تواثر اجمالی بید. هر درشون تواثر معنوی اجمالی داری اینست که اگر معنا که ما اینه تمام به باییاتی معنای غادری از ما که اون معنا سابس به شکل معنوی اما یعنی نقیق از معنی ما میدونیم یکی از این روایات صادر شده ببینیم تفت بخونم وقتی بیستا روایت آمده میدونیم یکی صادر شده بحث معنی این استغلاق تواصل اجمالی بیگیم پس تواصل اجماعی یعنی یکی روایت در این حلفازها. این از امام صادر شده، یا از فهمت صادر شده این میشه تواصل اجماعی اگر بین نه ما به الفاظ روایت کار نداریم به جامعه به این داریم اون ندار جامعه به این این او استلاحا تواصل معنی می بگیم استلاحه خیلی این دو استلاح به کار اما در کلمات اهل سنت در اینجا این وضوح نیست بگیم من شما دیدم اگه اون به شما هم فرد میکنه یکی ماه از سر برده. چون اگر تواصل اجماعی شد یکی از رواغی رو که خبر متعقلی میشهیم به این از پا رو میرساده شده یکی رواغی هستاده شده آه. اما تواصل رو یکی رو بگیریم. روشنیسته این فرقه به مثلا رواغی ما بیشانا میانم در بعضی و جید و خبر هم بحث هست در برس و خبر و خبرواهی این همی در پیش ما یاد کنند که پای خواهی باشده هم درسی یاد تواثر معنوی یاد تواثر بیماری این افتر این وضوح الان ما مفرق میکنیم افتر شنن مثل وقتی این فخرازی که این رو خواهر فرمون کن بیریم وضوح از نظر اصفظهار علمی با فرق فرم میکنن که یک روایت وارزه رو به این حساس شد از این روایت لا تشته معاملی علا یکی کلمه زلاله داریم یکی کلمه خطر داریم یا مثل می رو اربار از کل عمل مشکل اربار از کل عمل مشهول یا برای این دو درست کش من صاحبت هست کردم این که بزرگان از مماکی اما در آقاییون می شدم بین اربار از طول مجهول مشهول یا کل مشکل نمی داشته من برای از مماکاتو از و هر تو این جماعی هم کار برداره چون لطیفه رو اینجا بگن حالا اگه ما نبیدون کدون لب ثابت شده از ورسل کل را یا از ورسل کل عمر مشکل فرق بین مجبول و مشکل اینه که اگر گفت مجبول یعنی یک واقعی جاله ما علم بشه داری. اما اگر گفت مشکل اصلا واقع نداره. پس این شما در یک جایی نماز بکنید اون واقع داره شما یعنی نزداری نه سود از مرموز اونجا هم به باره برگردی مرموز نیست بین از ها من. در اونجا هم به واقع به باره برگردن پس اگر بخشی یعنی هم اون خوره سالت در اونه مشبور یعنی محبوز کار در جایید که واقع داره اما واقع رو ما نمیش نسیم علم برون واقع نزدار اما از با رسول کلی همه مشکل این دیگه پردش داره که اصلا واقع نداره مثلا کنسای مشکل ممکن است دو تصور باشه یکی در واقع زنه یا در واقع مرده یه تصور یه که اصلا در واقع یه که دیگه باشه نظر مرد باشه واقعش نیست نه اینکه که واقع داره من نمیشه پس اگر تو در قرآن تو بکن در اون نوشکه در نصیل فیلی به قرآن از خوب به قرآن برنگشتن. از خوب هم در فیلی در چهازیه به قرآن برنگشتن. به این سبت اوزیه این مثلا پس گفت لاس هشتر و که حلا زغاده یا لا هشتر و ممکنه از بین فرق زلال وقت از همین فرق بین مشکل و بگذاریم چون ننیراشتن حالون به دومن بقت اشاره این میشه اینجا انجام داشت که ما تبایده انجام خاطر اینکه به نظر ما فائزی چندانی حالا به هر حال یک بحث راجع کلمات اهل سنت بود که متعرض شدیم یک بحث راجع اون چی که ما در احضی نصوص داری این لحظه بیگه میشه به اطلاقات اون تمثل کرد مثل ایوان بعد واجه به روایاتی که ما داریم انواع مختلف تعبیرات اجماع داری در روایات خودمون بیشتر که مسائل احوالی آمده کلامی توی مناظرات آمده این اجماعی رو که ما آنم در فصول میخونیم در فقر آمده اشتر ما باید نشه بیشتر در کلمات روایات ما در مسائل کلامی حتی اگه ادهیش هم حتی اجماع هم هست این اما که اگر فرض کردیم یک مسئلی در انجیل نبود اما مسیحی ها همه انجام میدن اینجور میگفتن گفتنیم این شما مسیحی ها همه این کار رو میکنن ناستیم این مراسم هشه هر افتانی به این انجیل نمایی اون در این جیر دیداره شبه بدا شبه آخر چی به شبه آ پس مراسم اشعه اما خب همه انجام میدن یه واقعیه روی در کنید مسیحه دیدن یکی از راهها بوده که بگن اگر یک مدلی در موتونه دینی نیامده اما تمام اون افضال انجام میدن این روگاهی به عنوان با جدری انجام میدنن مناش گوتم به شما درست ممکن یه اشاره اشارتگانه توی, توی ایجی نیامده اما همه مسیحه انجام تنجام میدن بخیر مثلا دازه میادید دا مثل خب. مثل این که مثلا همیدار شراب میخورن بدون نونه تکیری رو برامونه خوش سر بخیرسه خوب اون مسئله اون که در نیفید نیومده مثلا این نوع حالت جدلی هم بوده که مثلا شما مثلا همین کارت همونه از بعد همبری همونه که شبه های توی پشت بارنا یک آخرز بوده چی که کاف میریدید در احلت چون را که خدا سعال الله باشد تو خوناه مردان که این کافه خدا مثلا این کافه خ... خب این ماره همه یه هنابره نرموزه نشداد شد داده شده پس مثلا یه حالت به اصطلاح جدلی هم بوده تو ما هم داره حالت برهانی هم بوده خب تصریر تفسیر دادن جدلی جد ما فضل ها همه ما شما شما مصنحان همه اعتقاد داریم به قرآن برگردیم. وقتی اینجا این قرآن اختلاف درست کار کنیم؟ یعنی یه مقدمه رو اِشمار میگیره بعد می‌آد باید یه برای قرآن باشه، یه مفسری برای قرآن باشه، رافع اختلاف قرآن باشه. چقدر سرمدید. اینا ما تو روایات داریم. خوب دقت بکنیم. کل میل داشت شما امتی که حالا روایات، که من گیر بودهام در کتاب فهد قبول در کتاب احتجاج در نامه امام کافی آمده اما در کتاب احتجاج این دیشک مراجعه می به کتاب الکشاف جنان در نام در مثلی از امام صادق به مناسبت ایشون داشت استعلامه که علشتا نمیاره طوریه واسه اما آورده شده و حتی یک روایتی برای المومن نسبت داده شده که بحث انتخاب اونه اولی رو مطرح کرده و با اولان جا تشتماع امومتی علا خطر هست جواب دن که اجماع نبوده اجتماع امومت نبوده صحابه نبوده این هست. این رو من نیدونم یه مورد دیگر که زهدم از بود پیگه وقته که امام ماضی فرمونم که حمول ستاس ادله ستاس یا کتاب یا سنت یا اجماع رو میسید وقتی بس که این عبارت نامه رو کندم این نبود. خیال کرده من اشتباه کردم. دیدون که که اشتباه کنان نشه روان بعض محدثین از کتاب تا عبره بود باید نشد خود تا عبره بود من دست من نبود من تو ذهنم از صاحب من بود اگر این باشه این قویطه این ما چون از سل در سید تاریخی در درجه اول تحس اجماع در روایات بررسی بکنیم و در درجه اول این مواد اجماعا که این تعبیر در روایات ما در فکر ما دو سه مورد خیلی معدود که تبدیل به اجماع شده در عهد صحابه یعنی در عهد اصحاب امام صادق در کوفه مثلا لاقلاق بین اصحاب ماهی اینطور برها در مجموعه متون موجود ما با یک سند معتبر و روشنی لازه اصحابه امامتی علاقه فرمه امامده این یکی در همین نامه یکی از امام هادی آمده حضر اعتراض میکنم که اون هر پیر که این مکنه رو گفتن درست نیست ظاهرا در معنا حدیث از در اشکال که این معنی که اینا به در میخوره این معنی ثابت نیست این ای بود که در حدیث ما در کار خودمون حالا فرص سال دیویست که مثل شهادت امام سلام الله علیه بود حالا اگر دوران خیبت سهر دوران در مجموعه ای که ما داریم از این نصوص سر در این مجموعه زمانی راجع به هاجاع همین داریم تا دیگه که مثلا حجم امت الاسلام اسلام مسلمون و که بیشتر درما های کلابی دا. این سال ۳ که دوران حیبت سوخ را میشه اگر در نظر بگیرید بریم تا 300 و مثلا چه سی در سال دیگه مرحوم سید مرتضی علم الهی اونجا و 436ه این بحث اجماع رو مفصلا بر ذریه آورده برادله طرفین هم آورده و, و نتیجه گیری که بله ما اجماع رو حجت میشیم بدون ذحائله واسه که هر زمانی باید داره امام معصوم باشه و از معصوم خالی نیست و امام معصوم افضل کوه ها و افضل اهل است و عجل فوقه پس اجماع فوقه ها کاشو بود. کل اون بحثی که الان اینجا که اون بحث بود اخیب مطرح کردیم امروز همه مطرد این رابطه رو دنبال این رابطه هستیم این. این چطور شد که در روایات ما یا در ما اجماع نبود اهل به دوش ترکید نکرده. یه رفت مختلف وقت داد این در رو بود این قسمتشه قسمت به اصطلاح امروز ما نیاز به به اصطلاح تخلیل نیاز به پیشرها نیاز به توجیه که چه رابطه‌ای رو ما ایجاد بکنیم طبعا همزمان با این مکتب بغداد که به دنبال اجماع بوده ما در مکتب قم بحث اجماع رو نمیبریم پس تا زمان به اصطلاح حیدت صحو حتی ما محاسره که کردیم تأکیب روی اجماع لا امتی اممتی علا خطر نبود و علا تقدیر اینکه که مثلا در درجات اجماع از مسلمون کنن امام نمیخوان به اجماع مسلمین کاشف از قول, صحابه از قول امام محصوله یا مثلا اگر صحابه مثل رو گفتن اجماع صحابه کاشف از قول رسول الله بحث کشف در روایات ما محره نیست چطور شد این بحث کشف نیست. یا یعنی که بغداد این کشف راه می افتید حالا مثل سید مرتضی مدرم شیخ یا شیخ مفید قبل از سید مرتضی است. و شیخ توصی هم داره و که مثلا مثال باره چطور بعد از شهست سال، هفت سال, سال؟ یه دفعه تو مکتب بغداد و نه در مکتب خوم اجماع مقرح میشه در فکر <تصفيق> و با یک دیدگاه کاملا متفاوت با اهل سنت بله این مطلب رو که اجماع کاشف باشه متاوت بوده با دیدگاه علمای ظاهری اطباع داود بن علی اسفانی ظاهری ها در میانه علمای اهل سنت مثل اخباری ها در میان ما خیلی تعبد به زواقه به نصوص هست اونا هم اجماع رو بجت نمیدارن الا اجماع اصحابشون کاشو از بالا رسولان خیلی عجیبه یعنی هون که اصحاب ما بشینی رفتن تا یک حدی اونم بغدادی های ما تا یک حدی شبیه هست به قول ظاهری ها اما با اقوال احرسون نمیسازه این تحلیلی مطلب خیلی به نظر ما جای ترجیح داره من عقیده خود من اینه که خیلی از مسائل که از اختصاصات ما و در فقه ما یا اصول ما بود به نظر من توی مکتب بغداد دارای تأثیر و تعسراتی شده غیر از مکتب قوم مکتب قوم تأثیر و تعسرات تأثیر خارجیش کمتره سعی کردم فقط نوص نوصی که در کتب اصهاب بوده روایات بوده مشایخ خونه قبول داشتن تحت تأثیر اون قرار بود احتمالا مرتب بغداد چون بغداد در اون زمان از بزرگترین شهرهای اکلومی زمان ما هم مهمتر بود به استثنای چین که مثلا فرسولی پکن و خانبالت باشه بودن به مثل چین که از دور دور بود از دست از دور بود طوری حدی هند بود در بقیه بینه, بینه مثلا فرسولی هند تا ایران و تا حدود افتدای روس و تا افریقا و از بارم بگیم تا در کل این دنیای امروز روز بغداد منحصره به فرق بود بغداد یک فوق العاده مرکز خلافت فقط نبود شما الان بزرگترین آرف ها رو در بغداد میدونی مثل پیونهی دونو سهلاج بزرگتای فوقاها محدثی زهار عباد سنعتگران شما هر چیز رو در بغداد این بغداد شهر باقر در اون زمان فواراده بود ارتباطات در بغداد کنم پرمون کرد مناقشات و بحث های علمی کنم پرمون کرد و در خود بغداد تا مدت ها معتضله خیلی قدرت داشتن همین کتاب ابن و از تا زمان سنوز معتضله و در که از مذاهب شیعی زهی ها خیلی نفوذ داشتن ادعا شده که در کتاب میزانه ارتباط زهدی سبوتین اصرار زیاد دارن از سال های سی چون من دارم تاریخ رو از میکنم محتضل اعتزال و شیعیان قولیشون بر رفت سال اعتضال روافض با اعتزال از سال سی و در بغداد به هم نزدیکی فکری پیدا کردن البته ارز کنم محتضل اقلیگرار بودن خیلی از مسائلی که تا اون وقت قالبا سعید میشد جنبه های تعبدش مطرح بشه جنبه های قانونیش مطرح بشه یواش واش در نهای جنبه های علمیش مطرح شد فلسفی شاید خیلی زیاد نباشه یکی کلامی زیاد بود یکی هم گاهی حتی منتقی بشد به جنبه که ما اصطلاحاً روز علمی میگیدن به قول فلسفی پس این بحث حجید خبر که عواسط قرن دوم عواسط قرن دوم شروع شد که انشاءالله حضر خب این کشوقا اصلاح شد. دی گوستان حجت دی نیست دی علم نمیاره این علم اوردنش غلطه بحثای منطقی یا فلسفی دی علم نمیاره دی گوستان عمل میاره این حجت اصطلاح اون زمان این بود دیوج بود علم عمل, عمل. علم یعنی خود خبر وارد به نفس مهم. مولد علم مثل اینکه و کبره موزه نتیجه در مقابل که عقل گواه نه علم نمیاره اما حجیت نه مقابل با فیلوش را بسن نه آقا نه علم میاره نه عمل میاره نه مولد علمه نه حجیت ده کن این عبارت سید مرتزا خیلی تکرار میکنه ان نه خبرن واحد لایون جبه علمه ولا عمله علمون معنا عملا یعنی نه دید این به اعتزام تا کار به مثل ابن قبه میرسه که ابن غیبه اصلا بنسو از بحث حجیتی رو بگذاریم نگه اصلا مستحیله بگذار ما حالا کار نده بحث حجیت نیست و نحوه استدلال و او به اصطلاح ما مثل یک حساب ریاضی است یعنی ما به اسطلاح بشمگیم گرای علمی داره نه فلسفی و نه کلامی بحث هایی که میگفتن حجیت داره حجیتش به آیات را. این بحث اصولیه گرای اصولی داره مثل ابنه دوی اصلا این با واقعیت انطباق نداره امکان جعل حجیت نداره و با یک اتجاه به قول عربی یا با فارسی با یک گرایش و با یک علمی یعنی اون میاد مقدم مثل 243 دو 243 شما میگه میگه شما احکام را تابع ملاکات میدونید خبر واقع چنش طریقیت صرفه خوب دقت کن خبر واقع اگه کسی به شما با در حرم بودی تو توضیه کاری نمیکنه تغییر نمی یا باز یا واسه خوب دقت کنید خبر واقع تریقه ترده دقت نکنید نیست که خبر واقع ایجاد یک تغییری در واقع بکنه خبر واقع تریه صرفه بله چون طریق صرفه گامی خطا میکنه گامی سوا بعد بله. اگر خواه کرد لا برس. اما اگر خطا کرد یا تفریح محصده یا اتیان محصده هست خب بله بله, بله, بله خب چون واقعه برد خب اقلا اجازه نمیده کدوم قانون است که بیاد به شما قانون جعل بکنه بعد این مخالفت قانون نمیده کنه این چه جبیه قانون گذاری؟ کدوم قانون گذاری به شما دقیقا تأبد یعنی که این خود قانون گذار قانونگذار بیاد بگه شراب حرامه چون محصر رو داشته دیگه شما به حق زراره دوش کن برد ما برد خب بیم کن زراره اشتباه کرد یا ثواده خود قانونگذار نمیتونه بگه به خبر واحد عمل بکن به نتبه کنی این نحوه استدلال اسمش چیه؟ اسمش روش علمی نه فلسفی است نه کلامی است. میگه شما واقعیت های که در نظر بگیرید ده تقی تعبیر کلام ابن و لزوما ما هر شب میسازیم هر با ابن عربی انصافا راست این مطلبی که ابن گفته درسته میگه نداره اون مقدمات اگر قبول بکنین که بحث نداره لزوما وقتی میگه اگر گفته تعبد به خبر یک مصلحتی بود پیدا بشه اسمش مصلحت شریفی گفتن واقعا تو اگر شما به خبر عمل بکن و میدونه جایی خطا میکنه ونداکی نتیجه خاطر من در مخالفت خود رو خودش واقع نیشن. خودش حکم گردید مطمئن شو یک چیزی باید مطرح بشه در یک کاری باید بشه این مقدار مقدمات مقدمات کجاله بگیه این مقدمات دیگر که هیچ مخور ارزش نداره شما حالا تصور بکنید بغداد محور تمام این بحث‌های علمیه یعنی از اون اول از اون درجه ظریفش که که بیشتر جنبه‌های عوامی داره می گفت خبرواز اصلا مونجه به علم هر کسی آمد آمده من گفت مثلا در حرمبازه من علم بکنم یه از درجه زدیبش در بگیریم درجه دومش گفت نه و علم نمیاره حجه در درجه سومش گفت نه علم داره نه حجه این سه درجه چهارو نه آشان نه علم نمیاره بگیریم امکان نداره استحاله داره تو بحث اجماع ما هم خوب به قطعه ما به نظر خود ما و به نظر ما در بحث حجم خورمانه در توضیح بیشتر خواهم داد به نظر ما تو بحث اجماع هم شبیه این پیش آمده بود تو بحث اجماع یعنی در بحث اجماع این مسئله پیش آمد و نظر در خیلی زمان خیلی اولش راحت می‌خوندیم، عبارت عبدالله مسعود از تنو شده که از قدیمترین عبارات راجب اجماع صحابه هم عبارات عبدالله مسئول باشه مارعاق المسلمون حسنان فاور اندالله حسنان عبدالله مسئول اینجور گفت عبارت عبدالله مسئول کامل بودی عبدالله مسئول میگه خداوند نظر کرده به قلوب از خواب رسول الله یعنی به مسلمان ها دیده این قلوب در اثر ایمان به خدا و رسول و عمل به کتاب سنت سباب بگردن اگر این قلوب یک مطلب رو قبول بکنن این مطلب درسته تعبیر عبدالله موسیقی ترگیر بکنن مارعه المسلمون حسنن فهوی اندالله حسنن حسن قلوب اصحاب محمد تعبیشون. صلی اللہ علیه وسلم فه جعنه ها مرکز انگار خودش بعد داره برد صحابه سنبی جمیعا واضح شکه ارتباط به نظر ما فرمیترین متن که تقریبا سرسهی هم داره احسانی متعدد داره همینه و این هم اده از در به رسول الله نصف خود بزرگان احرستان های شما رسول الله نیست ما عبدالله بن نیست امسای عبدالله نمسید نیست در دنیا احرستان ها خیلی حساب میکنه یه یعنی چوپان عادی بوده اون چه که به مقام آزده تو داخل اسلام هست اگر از اسلام خارج عسلند دیگه از لحاظ هنرشناسانه زیبایی روشه شما بودن خامات الی که خراب یه ماده خام بود که تو اسلام یعنی بوده یه فرد کاملا عادیه یعنی نه حالا مثلا یه دانشمندی باشه ساختتاز بدن اما حالا خود بوده نمیخوام بگم اجوانا بد تو بعض دروازه ما جدا حواریه میره من روشن روش نمیشونه من باز اون بهش نمیخوام بگم به حال دقت بکنید رو دقت مطلب رو این از اونجا، این مختل شروع شد آمد جروع. این اصل شروع از اونجا بود. خب، دردها هی شروع شد مناقشه. مناقش هم از طرف که می آمد اهلگره ها. قبول از طرف ظاهری بود، ظاهر منای نهلگره ها نه منای مناقشه. خب، یواشه هاش مناقشه شد. مثلا نزدان، جوز بزرگان محاوش از دلگاه اجماع بجرنس. ایدی ارگومان تدریک است این اجماع فیل نیست ولی اوضاع پاک نیست. از این چطور ممکنه ما می‌باشد اجماع با قائل اسلام؟ اسلام اون زمان، مثل آفریقا و خراسان و نیمیم، با و هندوس، تا آفریقا چطور ممکنه ما تا اندلس، ما چطور می‌توان اجماع درست کنیم؟ دقت تو عربه؟ مراحل سه در ازدريیه میگیم لگد اهل ده قوم، یعنی من مشابهه از تو. چطور خبر واحد رو ابن بایده گفت محاله ازده ها بوده گفتن هم محاله اون زمینه ها روشن بشه یعنی ازدهی در بغداد یا غیر بغزادی شونی در بغداد نوشته کتاب اصلا آدم گفتن اجماع محاله تعمالی کنم حالا من روشن محال بودن خبر واحد خبرتون اهل کرده. راجع به موضوع زنه از عبارات سید مرتضی عزادادی. سید مرتضی در من اگه حال داشت. خلاصه تقریر سید مرتضی چیه؟ اون نکته فنی تو عبارات سید مرتضی. ببین این, این کارها همه نتیجه تحریرات علمی بوده که مرتضی و غیر در زمان توی بغداد سید مرتضا حاصل اجماع رو اینجور معنا میکنه یعنی اون نقطه سنجی شد نقطه اجماع اینه که میگه اگر ما صد نفر رو تصور رو دانه دانه این افراد احتمال خطا درشون هست اما وقتی صدتا شدن احتمال خطا نیست لا اشتر محمدی علا اون نقطه اصلی حجیت اجماع رو این میگیره این در موشنه شد برسه لذا علمانه اهل سنت ندونهی که مخالفتن گفتن آقا نمیشه اگر تکت جالز و خطاست کلان به در خطاست مستحیل در خطاست واحد میتونه نت کردن استحاله تفاول کنید بحث رو که بحث اقلالی شد این در تفاول شدشنه بحث این شد که اینا گفتن اجماع حجته خب بشون سوال کردن تک تک این صد نمه جایز و خطان گفت برده تک تک جایز و اما اصلای ست هایی که جای و خطان نیست لا تک تک اون کسی که آمد تره استحاله رو مثلا کرد گفت محاله خب نمیشه سه دو منظوری مثال زده که اگر مثلا تک تک سه باشد، میشه مجموع استیار باشن مثلا در یه جای دیویستو باشه سفید باشد کنید. بگیم تک تک سفید اما حالا که دیویستو شده سیاه میشه خب میشه خب خب خب که سید موزه مثال دیده باید رد از کسانی که قالد استحاله اجماعه در سبار بکنی پس این آمده در حقیقت همون روش علمی اون روش علمی این که جل به اضافه دو چار شما 100 تا رو جمع میکنی یه دو سه تا 100 همه چیز میشه جای دو خطا یعنی 1 2000 3 یک حسن همه چیز رو جای دو خطا مساوی با غیر جای دو خطا که میشه <تصفيق> این ترکیبه روشه ترکیده, ترکیده ریاضی؟ چطور شما 100 تا واحد جای دو خطا رو جمع میکنید برای مثال خود راست سر وجود داشت تو یک مکان تا مرق جمع میکنید بعد بگید مجموع میشه سیاه میگردیم میشنم چیزی چی میشه ترکیب میشه در ترکیب که در پس بنابراین این معروض میشه که در بغداد و در دنیای اسلام یواش بحث و اجماع یکی اینکه حجب هست یا نه این کلام صحابه از حجیت نداری این خبر واقعی باید یه قسمی محصول گرای حصولی داره بعد رفت باید گرای واقع که اصلا ما اجماع نداریم کجور اجماع داریم همین نظام ما که اصلا حجیت نداره بیدید مثل همون بحث خبر بایدن مثالی دارن که از اون روشن بفیل یعنی شوش به اینجا منتجه که محاله اصلا چین چیزی محاله ل چون شما افراد امت رو جایز و خطا میزنید این محاقشت موضوعی تقریب نه که این تقریب بنده است یعنی این با یک روش علمی چون در وقت خبر وقت در اینجا با علمی گفتیم محا اینجا با روش علمی شما سد تا بذاریم فرلا هم به اضافه آیت الله براه براه براه به اضافه به اضافه شد سد هر هرکزا بذاریم جایز و خطا استاد این تقریب شدید صحبی نیست چون میگیم که یه خبری به ما میادن بگه این خبری یه نفر بیاره تو احتمال خطا خیلی بیادن ولی اگه سه نفر رو یه خبری رو ما دادن که احتمال رو سهید دلیری احتمال نیجا خطا شدید خبر چون مشکلش طریقیت داره اینجا فتواز رأیه خبر نیست یعنی مثلا صحابه همه آمده میگه شون این صحابه آمدن اولیان رو انتخاب کردن از یه طرف هم این کل واحد صحابه جایز و خطا کل واحد صحابه جایز و خطا نتیجه مسامی پس انتخاب اولی درست این خطا سوش ناده. این اشتاظ خبر باشد خبر؟ دقیق کرده چی مخوام بحث اشماع بحث خبر نیست حالا ما این اشتاظ توضیح شهر زمید. نه روشن شد؟ زمینه های سکری برای اصلا میشه که در حقیقت آیا واقعا سهید مرتضا و شیخ توسی که اینا بحث اجماع رو مطرح کردن و کاشفیت اینا در چه زمینه اجتماعی بودن که منجر به اینجا شد ما وقتی طور روایات نداریم تو کلمات از قبل نداریم چطور به اینجا منجر شد پس روشن شد یه بحث این بود که اصلا اجماع حجت اجماع مستحیل اصلا چون شما فرض رو قبول کردی که کل واحده جایز خداست. اگر این فرض قبول کردی کل واحده جایز الخطا خب بعد آخرش مساویس با جایز الخطا چرا آخرش نیستی محضوم از خطا؟ لا تک شما معمومتی علا اون آخرش نتیجی گیری اشکال چطور نتیجی گیری؟ اگر یک فقیر فقیر فقیر بیگه، اون فقیر دیگه صد تا فقیر فضا بوده، جار دو فقیر اما اگر فقیر با هم یکی درامر این با دیگه محصوم اگر فقیر با هم یکی درامر این اسمان فیدا بکنه، این رو چی جور ما توجیر بکنیم؟ نبید با رمشه همین ما نمیدونی توجیر کنیم آخر آخر با آخر که به اضافه مساویس آقای مساویس با جارتون خواهد چرا آخرشون با قاعده یافتی روز خب ها پس اگر قاعده یافتی شد وجود امامه این همه راهی بود خب, خب, خب, خب این زمینه این شد که موضوع راه وارد با اون ها روشن با اون مشکل علمی برخورد نکنین شما... من میخواستم بکرم که تردار از چیلی کنه یا با شوید ذهن خودشما آمد که ندیجی اون اشکالی رو که اونا بیدونی در حد عدم و نیست احال اوه در حد استعاله است. یعنی یک مشکلی البته این مطلب کلی هست که زمینه های کلکیی و, و از زمینه های علیم های کدار از این بحث کبرایی داره که برمون سنوزه وارد نشده عشریه محیطی که بحث قانونی سیره و در سیری و اوغلایی بارد وارد میشه. سفر دین احکام هر دو اوغلایی نمیذینه. احکام عقلی دلیله. تا احراز نکنه ظلمی نمیگه قبیحه. اما سیری و اوغلایی نیستن بر احکام عقیه. چرا چون میاد جامعه رو در نظر میگیره، هیئت اجتماعی رو در نظر میگیره. یه مصالح خاص برای جامعه لذا نمیاد به اون به قطع و ذرافت مثلا میاد بگه توی کلاس کلا تو کلاس های درست ضرب بدنی تنبیه بدنی برای معلوم حالا ممکن بعض تنبیه بدنی این واقع نافعه باشه ار رو جان قبیل ندونه اما در یک نظام اجتماعی میگه تنبیه بدنی تو مدارس منبود فقط بکنی. هر ببین حکم عرق و سیره اغلایی اینه در سیره اغلایی گاهگاه اون افتحای لازم ما نمی کنن همسان سیره اغلایی تصفیح حکم هره. اما در تصفیح و حکم عرق دقیقا موضوع شناسی تاثیر داره تا موضوع جمعی و خودستاتش احراز نشه نمی احراز نشه این کار ظلمه یا این کار احسانه یا این کار عدله حکم نمیکنه. اما در احکام و این دقت و مراحت نمی کنن نمی این دفتت کلی مثلا میگن تنبیه بدنی در مدارس کلن ممنوع، با که اونجا در, در برده ما تنبیه بدنی واقعا کمال باشه برای این بچه این واقعا که تنبیه بدنی باشه واقعا روش نمی کنه این امکان داره دیگه کن اما اینو نمی آن ملاحظه بکنن در احکام و اغلائی. ولی از آیه بحث اینجا است این که حسولاً با این دفتت های عقلی با این حساب ریاضی علیه تا سر همه جایز و خدا آخراسی این یک خلص بین افغاث عقلی صرفه با افغاث خود چیگه هست مردونان این مردون رو تقام و رو... فتافه رو آقا و غلا میدونن اما ایشان مشکلشون اینه که اون رو احکام رو به عنوان با حجیت یکی گرفتن حسن زور حسن و رو حجیت رو ما قبول کردیم و غلاییست عقلی نیست نسمان شیخو دیگران که میگنم حجیت غرزاتی ذاتیش قبول نکرد اما حسن و رو با موافقت ایشون موافقت نکردیم ایشون خود و قب رو من از قبیل خود شده روز دیگه. پس اینجا سوال روشن بود که یعنی مطلب یواشتاش روشن بشه که زمینه اجتماعی بود چه زمینه علمی بود این زمینه علمی در حقیقت منتقیدین شد و لذا مثلا شما بلازه در کلمات مثلا آرسو دارد قدیل شدید کردیم و بیادیم مثلا که اگر ما اجماع رو مجرد داریم از لطه یا اجماع دخولی سی سه موضوع گفته یا متاخلی نوصولی مثلا امشان من از قاده گفتن ما به جرین حرف، اصلا ریشه که پیدا کردیم اصلا نکی. بود که ما رو بگیم کار درست این دوباره تحمیده هیچ اصلا چه نکته از حال ما رو به اجماع کشون یه نظر رو توزیده فردایش بیشتر توزید الله صلی